حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روز بده بلک هوا دارته چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم اجوا که دل سبزه دچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا بشوکه قلب سبز دچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حال احوالتون چطوره خوبین خوشین سلامتین یک هفته دیگه و یک رادیو پس فردا دیگه با شما ایم و این هفته و امروز پنجاب و چه دقیقه آینده رو با ما باشید خوبی این خوش این سلامتین چه خبر چی چیکارا می دیروز رفتیم رائی بدیم بالاخره یا نه رای دادین؟ را ندادین. هر کاری کردین بهترین کار رو انجام دادین فرقی نمیکنه هر کاری هر که دوست داشته کرده دستون درد نکن نتایج تهران که خب نصفش اعلام شده بقیهش هم اطمالا تا آخر شب میگن اعلام میشه چرا این تا استوانی نظام هنوز تو لیست 16 تایی موندن پس حالا هنوز نتایج نهایی اعلام نشده ولی استوانه ها فعلا که رأی اطراف تهران رو شموردن ته لیست به سختی خودشونو جا دادن حالا باقی تهران هم که علام کنن معلوم میشه که استوانه ها چند تاشون میرن مجلس بالاخره مجلس خبرگاه یه چیزی میشه دیگه ما هم حالا از دیروز همیجور داریم خبرار رو دنبال میکنیم امروز توی برنامه بازم گوریزی به انتخابات خواهیم زد بریم سراغ موضوع امروز و شعر شاعرمون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 مو و صبر و غم و بد انتظاری کرش شانس ما بستن به گاری ز تفلی منتظر بودم همیشه شدم شکل خود مرغ سخاری مو و این انتظارات فضایی عزیزم این ورا پس کی میایی؟ دو چشمم چشم و گوش چپ من کجایی تو دقیقا با کیایی خب تشکر میکنیم از بابا شاعر اوریان یا همون شاعر برناممون این هفته موضوع برناممون هم طور که از شعر بابا شاعر اوریان متوجه شدید فهمیدید در برای انتظاره موضوع این هفتمون انتظاره حالا هر مدل انتظاری که مد نظر شما هست از اون انتظارات که هی آه میکشین میگین پس کی به سر میاد بابا یا از اون انتظارات که هیچ وقت به سر نمیان و هی بر چشیدشون و البته خب سی مدل انتظار دیگه ای که تو فرهنگ ما ایرانیا هست و ما باهاشون همیشه درگیریم خلاصه انتظارات شما رو هم سعی می این هفته که موضوعمون انتظاره براورده کنیم باشد که مورد قبول بیفتد پس شب ساعت نه هر شب دم در ویت <تصفيق> اما خانم آقای این دکتر خانم آقای پسر توی گیرودار جنبوجوش طرفداران نامزدها و گروهای انتخاباتی ما همه جور فعالیت انتخاباتی دیده بودیم جز نوه خونی انتخاباتی که خب به لطف فعالان بر حال فعالان اونوری اینجوریش هم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 او هم دارم میذارن تو سر و سینه‌ش آخه بابا چرا اینجوری می‌کنین؟ برای رأی دادن آخه چه نیازی هست که اینقدر به خودت جو بدی؟ حالا فرض کن مثلا شور حسینی هم بره داره چی میشه؟ مگه بیشتر از اون 46 تا اسم می‌تونی بنویسی رو برگه یا بیشتر از یه برگه مثلا می‌تونی بنویسی تو صندوق آخه تو آدم چه می‌دونن حالا شاید اینا بتونن دیگه خلاص این دوستان می‌خواستن برن و به حرف و پایان بدن و چشم انگلیس هم در بیارن. و چه قوغایی هم شد اتفاقا توی شعبات رایگیری درست پیش بینی کرده بودن ولی منطقات چیز ده. تیر اجابت اشتباهی جا خورد به آقای کوچکزاده نماینده تندروی مجلس مجلس قبل که این دوره هم کاندید بود و بنده خدا میخواست بره حسینی ارشاد رای بده که اینجوری شد قره صف قره صف وaden بنان رأی بدن دیگه با شواره درود بر خاتمی و تای صف دیگه فرستادنش بره تای صف و بنده خدا مجبور شد در, در پشتی بره تو سلام فارسی چون خوشحال از عصبویه دیدم بایدون. که کلکل دمای سرده و این برنامه ها خواستم بگم که دمای اینجا من منهای 32 درجه فیلز لایک مثبت 45 درجه بله فقط صرفا جهت اطلاعاتتون گفتم بدونید مام داری <تصفيق> خیلی ممنونم احتمالاً یا دماسنج مشکل داره یا مشکل از feels like فیلز لایک شماست یعنی فیلز شما مقدار ممکنه دو چهار مشکل شده باشه سعید جان سلام سلام فرسی جان چطوری چه خبر؟, خبر همه چی خوب همه چی خوبه آره اول, اول روز هفته است استراحت کردی شارژ شارژ واسه این هفته به به خیلی حالا از آب و هوای ایران برام بگو چه خبره بله فرسی جان این هفته شاهد حضور و استقرار یه توده یه هوای بارونی تو بخش غربی ایران هستیم و انتظار هم. میره که تو چند روز آینده بیشتر مناطق نیمه غربی کشور شاهد بارندگی های نسبتا خوبی باشه دامنه این بارندگی ها به تهران هم میرسه البته مهم. و از فردا تا اواخر دوشنبه بارش های ای رو به شکل رگبار تو مناطق مختلف تهران خواهیم داشتیم بله بله دمایه هوا این هفته کمی کاهش پیدا میکنه اما مهم. همچنان تو بیشتر مناطق شاهد یه هوای مطبوع بهاری هستیم نکته دیگه این نیست فعلاً جزئی اینکه روزهای دوشنبه و سه شنبه شاهد وزش بادهای نسبتاً شدیدی تو مناطق جنوبی کشور هستیم که علاوه بر پدیده گرد و غبار و ریزگرد، ها باعث مواج بودن دریا هم میشه و کشتی ها و لنشای کوچیک اون روزها باید این مساله رو مد نظر داشته باشه دریا موج کاکا دریا منز نه بران دردی آره دیگه بعد مراقب باشه خب پس هوای خود ظاهرا خنک‌تر شده از هفته گذشته یه تلفنم هست اینو بشنویم سلام. میخواستم به اون آقایی که گفته بود که چند تا عکس داده آوردیم بگم خداوکیلی صدای سعید بده صدای به این قشنگی کاش ریافشم می‌دیدیم ببینیم چه شکلیه مرزگانم اصلا ده بله مجگان خانم از لندن برابر شد لطف کردن اعتماد برده. به نفسمون که هفته پیش کاملا از بین رفته بود <تصفح> زدن کمیش تلیکونزن. برگشت الان خیلی ممنونم مجگان خانم بودن ولی مجگان خانم لندن دو نه والا دختر خاله نه به فادمه مثلا مجگان نداریم تو پالو فامیل <تصفح> بابا عکسشون هم که هستون بر بچه ها هست تو این اینستاگرام رادیو پاسوردا بر بچا عکساشون هستی که سعید هم هست مرسام هست الی هم هست شهرام هم هست سامی هم هست جلال جا میگن هم هست قضیه عکس زیاد مانوف ندیم ممکن ناامید بشم <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> <تصحيح> حالا بریم ببینین دیگه اگه ناامید شدین خودتون کامنت بذارین دیگه خیلی ممنونم مرسی سعید جون مرسی اما اما بریم سر موضوع برنامه که البته اول برنامه گفتم این هفته میخواییم با هم در مورد انتظار صحبت کنیم همونطور که گفته میشه همونطور که گفته میشه 72 درصد از کره زمین رو آبها و اقیانوسها تشکیل میدن بیشتر از 70 درصد زندگی آدمها رو هم انتظار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 اون انتظار کشیدنهای روزمره توی صف و توی اتوبوس و مترو و سر قرار رو توی مطب دکتر و ایناست مجموع این انتظارهای روزمره و اون انتظارها در کل حجم زیادی از زندگی ما رو پر میکنه و ما این هفته میخوایم با هم در مورد مفهوم انتظار در اشکال مختلفش با هم صحبت کنیم پس برو بریم که کلی حرف نگفته داریم و فقط 10 تا برنامه دیگه باقی مونده. موزای آخر که عددهای مرکوز برنامه پسورد داره میرسه به تکرقمی این فوت کردنش هم تولد میمونه 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سکوی آتش فایر فرشید جان کجا میری دقیقا کجا میری فرشید ماسماس. ماس. یعنی کلش ماس ماست فری رسیقم انقدر از این که چند تا برنامه مونده تموم بشه نگو مرسی آه. بله دیگه بله دیگه از فردا که میریم که شمارش معکوس از 10 داشته باشیم امروز برنامه 990 دیگه دیگه واقعا چرا رفتم چرا من بی قرار رفتم که نرفتم ولی دارم میرم آقا میرم میرم دیگه پیغام نمیکنین میرم یه جای دیگه هیچ کدوم متون پیغام نکنه حال ببینی که گفتم بله ای ینج نوشدار و خستگان گذر کن مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری امید دگر به باید بعد از وفات فات ما را عمری دیگر به بعد از وفات فات ما را که تی نمودی انتظار ها در سنین مختلف وقتی انتظار های آدم با خودش پیر می شود بیانیگه شماره 990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 برای خیلی چیزا تو زندگی یک جا ایستاده و انتظار کشیده ها و الان هم زیر پاشون علب ثبت شده های رادیو هست و از دست همتون میرم خودمو غمگور و میکنم از دست همتون از دست سام از دست شهرام تو زن نمیدم همینه که همین که همینجوری بمون یه لقبا والا این هفته به ما بگین چه نوع انتظارهایی رو بیشتر تو زندگی تجربه کردین و کدوم انتظارها بوده که از همه بیشتر باعث ناراحتیتون شده انتظار دیدن یار انتظار رسیدن به زنگ آخر مدرسه انتظار اعلام نتایج انتخابات انتظار برای سر ما که حقوق بیاد تو حساب انتظار چمنون اومدن پدر به خونه وقتی زدیم با توب شیشاره آوردیم پایین انتظار برای جواب یه مسیج فیسبوک انتظار برای تعطیلات نوروز وای وای وای, وای. کدومش زمنم به اون بگین برای گذروندن مواقع انتظار چی کارا میکنین وقتی که دارین انتظار میکشین آدامس میجوین تسبیم میندازین دن و میکنین گیم بازی میکنین چرت میزنین چی کار میکنین که انتظار کشیدن عذیتتون نکنه زودتر بگذره بره نمی‌شه فحش، چرا همه‌تون اینقدر دور این خانمی که داره این شماره رو میگه، سه تا شماره رو گفت من فقط نمی‌شام یه دونه‌شون بزنم. اونم الان میخواستم تست کنم ببینم چه خودت هم که الان رو این یه چیزی گفتی من آخرش فهمیدم. ولی اصلا کلشا نفهمیدم. کیوان هستم از استکهلم. کیوان جان شما که از استکهلم زنگ می‌زنید، چرا دنیا دنیای ارتباطات، دنیا ارتباطا دنیای دنیا سرعت، همه چی سرعتیه، همه چی سریه. زو توند سری الیومرسا برو بریم سلام پرش جان یه سری امضا هستش براتون میخونیم خانم ارغوان از لندن یگان برگرد از سوهیل <تصحیح> <دوکتور>. <تصحیح> نمیدونم سهیل کجاست واقعا از قلب سهیل بوده احتمالاً اه... خیابون سهیل احتمالاً دیگه حالا آره. یه جایی هست دکتر سوسن بیب متخصص قوس خاوری بیب از ساختمان پزشکان بابل بیب دار بوده این بله. خیلی. نمیتونستیم بخونیم یاسمن قه یعنی جیهیچ از شیراز احمد شیرازی از انگلیس آرزو از بندر عباس محسن مل چابهار شهر همیشه بهار. آدل از اهواز عباس پلنگ انگلیس <تصفح> رضا میرزایی افغان ساکن قوم مینا تهران کامبیز و بابک شیراز سامان دوستان خونه محمد و سیما موجده از توی خودش فروخ خانم گل من منصوره از هلند مرسی از اح خیلی ممنون مرسی اح از جفتتون ممنون مرسی بعد دیگه ایلی گفتن چرا میگی بله خب ببخشید دیگه پیش میاد ایلی میگه بله خیلی نمیگه بله من چرا زیاده خور شده به به خدا من نمیدونم واقعا چه, چه کار دارن با الیاخه چه کار دارن راهای ارتباطی من بگیمو بیاری راهای ارتباطی تلفن هاست دو صف چهارصد و بیست پیستو و سی دو صف چهارصد و بیست و شش و دو صف و سی و تلگرام ما هست آدرس واردگرام ممنونم متشکرم مرسی ها <متصف> <متصف> <متصف> به دارم هر لحظه واسه دیدن عقب دارم نمیشه که از تو صد بشم میارزه واسه تو با همه بد بشم یشکی مثل تو نیست و همه فاداری با خنده هات خوشبخشی با سمیاری با تو که آن برای تون بگه که انتظار کشیدن آدم ها از وقتی شروع میشه که یکمی از آب و گل در اومده باشن و به سلاح عقل رس شده باشن یعنی تا قبل از این مرحله چیزی به نام انتظار تعریف نشده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 یعنی کی بابا و مامان بغلش میکنن یا میزارن نشت تو کالکی که ببرنش بیرون. بعد کم کم که بچه بزرگتر شدین انتظار تبدیل میشه به انتظار که مثلا کی اصر میشه برنامه کودک شروع میشه دوره ما که ینی اینجوری بود سر ساعت پنج اون بخش ونگنگ ونگنگ ونگنگنگ ونگ ونگ ونگ ونگ. این شروع میشه. بعد ما از صبح منتظر این بودیم می شستیم ساعت پنجه بعد از ظهر این بنگ بنگ بنگ کنیم آره البته روزای جمعه فرق داشت ساعت دو برنامه کودک می داد و هم فیلم سینمایی پخش می شد یه انتظار دیگه هم که به خصوص توی تابستون که مدرسه ها تعطیل بود ماها داشتیم موقعی بچه بودیم اونم این بود که کی ای عصر مامان بابا میذارن بریم تو کوچه بازی کنیم. تقریبا تا قبل از دبستان و سالهای اولی که مدرسه می رفتیم کل انتظاراتی که تجربه کردیم همین بود و بس حالا به بقیهش هم می حالا ما نمی‌دونیم از این نسل جدید به خصوص این رایاوریا چیکار کنیم میگن دیروز یه سریشون دنبال استامپ صورتی می‌گشتند یکی دیگش باشه گریه می‌کنه که چای این آقا مهلش کک زد توشان هست خدایا کیو من باخور <تصفيق> بابا حالا ما خودمون هم رای اولی بودیم دیگه همین جوری بودیم دیگه حالا حالم چی معظم له نمی‌رفتیم که رای بدیم که تو هم مایا بودیم شما سخت نگیر دیگه خیلی ممنون واسه تماس آه. توی دوران مدرسه یکی از مهمترین انتظارها انتظار خوردن زنگ و تموم شدن کلاس و مدرسه بود این انتظار البته بعدها تو دوران دانشگاه هم همراه ما اومد و همیشه از نیم ساعت مونده به تای کلاس زمزمه‌های استاد خسنابوش استاد نباشید, نباشید. این همینجوری هی میگفتیم استاد نباشید همچی شروع شد. یعنی اصلا انگار سری کلاس می اومدیم میشستیم فقط به انتظار اینکه زنگ بخوره تموم بشه استاد خسنابوش بریم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 مادر چه خوب کردی زود اومدی امشب و میتونم راحت بخوابم مادر من وقتی به انتظار گوریزان زنگ میزنید که راهی برای آدم جز این که زود بیاد خونه انتظار گوریزان در خدمت شما عزیزم شب زود میهی خونه یا انتظار گوریزان رو بفرستم سراغه نه نه نه قربونه سراغه هنوز شای انتظار گوریزان قبلی کبوله خودم زود میام بار میدن حالا شد با انتظار گریزان انتظارهای خود را به خاطر تبدیل کنید. انتظار گری دگرانی ما از خودهای آدمی است که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشد کامران <تصفيق> ملکپوری سلام سلام فارسی جان سلام همگی چه خبرات تو این چند روزی که نبودیم والا مهمترین خبر سینمایی امروز درگذشت فرجله صلاح شوری که خوب در زمان حیاتش یک از جنجالی ترین کارگردان های سینمای ایران بود به خاطر حرفایی که میزد زد صلاح ماها بود که به سرطان ریه مفتلا شده بود و امروز صبح از دنیا رفت فردا صبح از مسجد نزدیک منزلش مراسم تشییع انجام میشه چون طبق خواسته خودش نمی مراسم از خانه سینما انجام بشه عجب. روح شاد ما هم تحصیلت میگیم به خانواده سینما چقدر سر به سرش گذاشتی کامران تو این برنامه فکر کنم ام از دست دو تو دیخ کرد بیچاره دیگه چه خبر؟ حال میکنم یه فیلم خوب معرفی کنم فرسی جان که چند روزه تو گروه هنر رو تجربه اکران شده به اسم دینگو مارو ساخته کامران هیدری دینگو مارو یه فیلم مستند درباره نوازنده بندرباسی حمید سعید که خودشو آفریقایی تبار میدونه و دنبال کنسرت دادن تو خیابونه اگه موافق باشی بخشی از صدای فیلم رو با هم بشنبین بشنبین اسمم حمید حمید سعید آفریبور تبار هستن معروف به دینگو مارو دینگو مارو یه باد وحشین که از آفریقا میاد می سال‌ها یه چیزی تو فکرم آرزو مدم یه بانوازنده و آفریقا تبار مثل قبل کنسرت آفریبیونسم تو هرمزگاپ بخش صدای فیلم دینگو مارو ساخته کامران حیدری رو شنیدیم خب می گفتی تنها چیزی که میتونم اضافه کنم اینه که دو تا سالن برای نمایش فیلم کللا اختصاص داده شده که باز بر میگرده به رفه تکلیف ارشاد برای نمایش فیلم ها فقط دو تا سالن دو تا سالنجب از موسیقی چه خبر کام را؟ تو این یکی دو روزه گذشته ماجرای توقیف آلبوم جدید فرمان فتالیان به اسم دیده دیدار توسط حراست مرکز موسیقی خیلی جنجالی شده علیه توقیف هم انتشار کاره قبلی خواننده تو سایت رادیو جوان بهش اعلام شده فرمان عملی نشون نشونده؟ چرا اتفاقا پتلیان تو صفحه شخصی‌ش تو فیسبوک نوشته یه خواننده میره با شبکه منتو مصاحبه میکنه معذرت سالار عقیلیه کنسرت‌ها و تورهای اروپایی خودش از طریق از این طریق مطرح میکنه با تمام به قول آقایون عوامل جاسوسی شبکه ماراتو عکس یادگاری می‌اندازه بعد که ایران برمیگرده نه تنها توبیخ نمی‌شه با فرش قرمز و احساسات مردم و لطفت مسئولین رو برون می‌شه و به کارش ادامه میده از طرف دیگه آلبو من منع طرف ارشاد توقیف میشه به دلیل اینکه یکی دیگه موزی که من رو در رادیو جوان گذاشته منم از همه جا بیخبرم این چه ادالتیه چه قانونیه کجای دین اسلام همچین چیزی رو گفته حواله نامردان عالم رو داده به تیغ دودم علی یعنی کار رسیده به آرفه. امامان و محسومین و اینجور چیزا یه بخشی از حرفش هم خوب درست میگه دیگه. یه جورایی هم حرف کنیم درست میگه بسیار خب ممنونم آره ممنونم ازت کامران عزیز باید خدافزی میکنیم تا فردا میریم یکی از کارهای فرمان فتلیان به اسم آغوش صدا تا فردا کنار <مزدی> می‌گروت هنوز اوج صدای من دلیل نبض بی‌نقص دستات من است تکرار بیهوده از این در سردی هر فام از این عزن صدا بی‌زار که دل تنگ نفس هات من است تکرار بیهوده از این درد سردی هر فام از این وزن صدا ویزور که دل تنگ نفس و نفس ای و با شنبه شب را ضمن نگریانی از شدت یافتن حملات روسیه در سوریه با مروری بر عناوین مهمترین خبرها امروز و امشب او می مینا شمرده شدن 70 تا 80 درصد آرا تا پایان امشب بر اساس نظر وزیر کشور و نظر کارشناسان که وا چه کندین شما سال 88 قبل از طلوع آفتابوس معمود محمود دور افتخار برنده شدنش هم زده بود افزایش نرخ کرایه تاکسی اتوبوس و مترو در تهران و نظر ناظران که با خب الان این لغمه انتخابات از گلیمون پایین بره بعد شروع میکردید کارتونو و پخش شبنامه ها به علیه علی جامعی در قوم و تهدید فعالان جبهه پایداری که ایشون اگه همینجوری بخواد از ما دورتر بشه عکس خانمش هم میاریم همه جا نشون میدیم مهمترین اناوین خبری صابت گذشته را شامل میشدند اینک خبر خبرها با همکارم بوی بوی با سلام! شعره نگهبان زمین تقدیر و تشکر از فعالان رسانهی برای پوشش هرچه بهتر حضور باشکوه ملت عزیز ایران در انتخابات هفتم اسفند اعلام کرد انتشار سورت جلسه ها و مستندات شعب اخز رای تخلف محسوب می شود و ممکن است زمینه تمعورزی تمع رسانه بیگانه را محیا سازد در همین رابطه یکی از کارشناسان امور شورای نگهبان کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه نتایج نهایی انتخابات باید به تأیید شورای نگهبان برسد و حضرت آیتالله جنتی در اینباره تصمیم گیری نهایی را خواهند کرد طبیعی است که انتشار سورت جلسه صندوق های رای منجر و سوء استفاده رسانه های بیگانه خواهد شد چون نتایج آن چیزی نیست که در سورت جلسه آمده بلکه آن چیزی خواهد بود که آیت الله جنتی اعلام خواهند کرد وی در پایان شورای نگهبان را کاملا بی‌طرف دانست و عکس منتشر شده از رأی دادن آیت الله جنتی در حال رأی دادن علنی به فهرست اصولگرایان را هم دست رسانه رسانه‌های بیگانه دانست پایان مرشور اخبار ای بله همکتون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه بله. به آقای جناب سرهنگ هستی بل بندم سلام ارز میکنم ما در خدمتی شنوندگانی عزیز هستم سرنگ اوزای امنیتی انتخابات چطوری بود؟ بسیار عالی بود و پولیس با و نیرو و 26 فروند هوا و هلیکوپتر به خوبی.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 یعنی مثلا تو روز انتخابات م... هر خانمی با مانتوی کوتاه سپورت بله. آرایش قلیز موی بلند روی سیان ناخن دراز با وا... وا... وا... اومد تو حوزه رای نه فلسفیو چی... نه گلغلی نه هیچ کسی کاری به کارش نداشت چی, چی میگی شما آقا حالتون خوب نیست که عرض کردم تو روز انتخابات گشتر شاد ماموریتی ندارد ولی نیروهای پلیس همه جا حاضرن همیشه هی بله من فکر کنم ب... کسی بدون ساپورت و مانتوی کوتاه هم بیاد بیرون روز انتخابات کاری بهش نداره سر ببینید من متوجه منظوری شما نمیشم آقا سر این منظورم اینه که خواه. اگه حجاب یکی مشکل داره دیگه روز انتخابات غیر انتخابات نداره که کلا مشکل داره دیگه نه دیگه ببینید پلیس اولویات بندی داره در ماموریت‌ها اصلا اینجوری نیست که شما بهش نگاه میکنید که آره دیگه نمیشه از یه طرف به مردم این... التماس کنین بیان رأی بدن از طرف دیگه بندازینشین تو ون ببریدشین منکرات که واقعاً شدنی نیست آره درسته آقای عزیز شما سوال دیگه ای نداری من با توجه در جریان بودن شما ریش هارو باسر برم به مسئولیتم رسیدگی خونم آقا میگم از این برای بچه‌هاتون که سر صندوقن خاست. یه آماری چیزی نداری از شماره رئیس الان برای مردم بگی داغ دا این جنتی نه بالاخره چی شدن رایا بردن. رایا بردن. نه ورن نه ورن ببینید شد. اونا به ما مر بود نیست ما مسئولی امنیتی صندوقم آقا جون غندی با من تماس گرفت گفت امنیتی صندوق کامل برقرار اوه اوه قندی بله من این دستپاچلوفی رو آخر می‌ذارم مواظب صندوق باشه سر همین آقا درستم بحث کن در مورد این ماموری قا را من سرباز بودم یه بار ماموری محافظ صندوق بودم بله موقعی شما لرشی هم بهم گفتن بیا کمک آقا اسم هر کی رو میخوندن من واسه یه خانم علامت میزدم واا <تصفح> واقعا خجالت آوره کی بود حالا فامیلتون بوده نه بابا میخاستم برم مجلس بعد که سربازیم تموم شد برام باش ازدواج, ازدواج کنم اون کار کنی منم لذتش برد بعد شما مخاط از خیلی وقتی <تصفح> پیش مشکل داشتید من فکر میکردم جدی اینجوری شدی شما به رنگ دلم میخاست این خانم هستن شوهرشین دکتری بعد میگن خانم دکتری. به منم بخاطری به خاطر زرم بگن مثلا آقای نماینده یک حالی میدهد به خدا شف ها آخ... واقعا مریضه بعد حالی شما تموم هست دیگه بریم آقا جون با تمومه دیگه با تشکر داد خو... توجه شما توم شبی دیگر و برنامه دیگر و سرهنگی دیگر با... خدا هم نگه ببین سرهنگ از این حوزه شلوق هم دوست داشت ما. مثلا نماینده که من در ترکمند کردکوی من در گز. اینا مثلا من متاسفم شما همین جور دارت حالت بدتر میشه یا اصلا حوزه فردوس تبست اینا... سراغیان بو شروعه الی با کلاس خدایی شد یا عالمه جاست جز... ببین آقا جون شما چیزه... دارو آتو بگم اونم فراموش کرده دوباره بخوریشون. هوا بابا این نمایندگی مجلس این حرفانه نداره که نه نه ببین خط هر ناکه شما دارو آتو به موقع بخور خیلی حال میدهم باش به شصتانی سرخط خبردار دستگیری فرشید منافی و توبه سریع وی در حضور روحانیون برجسته حرام اعلام کردن برنامه رادیوی پسپرداد توسط علمان و گوشایش ایسکاه رادیوی پریروز در قوم همچنین همبستگی روحانیون قیور پراک در حمایت از فرشید منافی گلایه اعضای مجلس خبرگان از عدم و حضور فرشید منافی در انتخابات این داره خیلی متشکرم با شیوه بی بی سی رفتن دیگه خیلی لطف کردیم یعنی ماشاءالله همه گول نمک همه خلاقیت دمت گم خیلی ممنون از تماستون اما خانم آقایون دختر خانم‌ها و پسرا انتخابات دیروز برگزار شد و اگر برگزاری این انتخابات برای هیچ کس هیچ حسنی نداشت برای ما یه حسن داشت اونم اینه که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 در انتخابات امروز به صورت لیستی به کاندیت ها رایی دادید یا به صورت انفرادید؟ رای رایی که مخفیه دیگه <تصفح> بله دیگه مخفی دیدین ولی اولش جدی واقعا عصم محمود داره به کجا میره ما فکر کردیم اینکه ایشون رفت مثلا نمجوری مادر مرحوم چاوز رو بغل کردی یا حالا پیش و پیش آمدی بود و اتفاقی بود و گذشت تو نگویشون کلا یه جورایی خیلی سیکسی تخیلی شدن این اواخر دیگه دیگه که خبرنگار میرزش سوال انتخاباتی بکنه ایشون میگه بده بیاد ماچو خلاصه دوستان عزیز به خصوص خانم ها باشین این اوسم عمود دیگه خیلی خطرناک شده یه جورای دیگه نزدیکش نرین اما دیروز توی حسینی ارشاد آقای کچک زاده نماینده بسیار بسیار دلواپس مجلس اول برنامه هم گفتیم رفته بودن رأی بدن � ولی بله خب مردم حاضر در این حوضه انگار که خیلی علاقه به ایشون نداشتن و غیر از اینکه شعار درود برخاتمی و تحصف تحصف گفتن و ایشون رو هو هم کردن این شکل یعنی از ایشون استقبال کردن <تصحنت> <تصحنت> بله. حالا در ادامه خبرنگار تلاش کرده بره با ایشون مساهبه کنه که تو این مسیر اتفاقات جالبی افتاده اینم گوش کنی؟ آقا محترم خواهش میکنم کنم بفرمایید آقا عزیز آقا پزشک خودشون جواب دادن به شکلی خودشون جواب دادن نه حالا نگم نمی‌دونم شما تو بتونید برنده خای بود اصلا راییدو اجازه با این درو باز تو چجاست تو اینجا به ما رسید ساک چه دی آقای محترم بچه‌ها نشینوا آقا من دارم کار خودم می کنم امنیت مگه این داخل با چه جشنواره داخل داخل جشنواره باشه ببین داخل, داخل, داخل باشه مسابقه کنی یعنی آقای محافظ گفت امنیتی آره بو اینا بو که خبرنگار مربوطه هم خب کم, کم نی دیگه فرصت گیر آوردن این جوریه امسال آقای فقط توی همچین روزای دست میده دیگه البته تاد زیادی از هنرمندان داخل کشور هم اعلام کرده بودن رأی میدن یکیشون حمید فرخ نجات بازیگر سینما بود که ایشون هم از این فضای باز انتخاباتی استفاده کرد تقریبا دیگه هر چی تونست دیگه تو صفحه رای وایساده بود دیگه اومد و بعضی ها گفت دیگه متاسفانه خیلی روزیشون و نونشون توی تشنجه توی در واقع تحریمه و ملت هم خب به واقع خسته شده این حضور خیلی از اینا شاید داره اینو میگه و نتیجه آرام ایشالا اینو بگه ولی خب میگم متاسفانه تو شرایطی هستیم که یدی اصلا میخوان این فضای مکدر حاکم باشه نمیدونم. اصلا برایشون مهم نیست سرنوشت این کشورهای جوار رو نمیبینن مهم اینه برایشون که در واقع تو تحریم کاسبی بکنن دلالی بکنن بله ضمن آرزو این که اتفاقی برای آقای فرق نجاد نیفته این بخش رو با شادی بعد از گل که نه شادی بعد از انتخاب شدن یک نماینده و طرف توی که از شهرستانا به پایان میبریم با این توضیح که به جان خودم اصلا یعنی ماها هیچ دخت و تصرفی توی این فایل صوتی که الان میخوایم پخش کنیم نداشتیم یعنی این فایل صوتی هیچ ربطی به قبایل سرخ بوستیانو نداره زارن دوستان دارن کل میکشن فقط خوشحالا خیلی خوب، خیلی خوب. کر شدم بابا دیگه شما قول بدین اگه کاندیدای مورد علاقتون رعی آورد یا کاندیدای مورد تنفرتون رعی نعی آورد دیگه یجور خوشحالی کنید همسایی ها معذب نشن خدا امکان کنترول احساساتو گذاشتن برای همین روزا دیگه والا ماشین مشتی ممدلی عرضونو بیموعتلی ماشین مشتی ممدلی نه داره نه سندلی زی شما چیه زیاده شلوغش میکنه بابا یعنی اصلا شما زبان این, این دیگه با یه قوره سردتون میکنه با یه مبیض گرمی والا بابا ما را این نگاه نکن ما هم سی ساله قریبین انتخاباتو از نزدیک و ازدیک میبینیم دیگه نوکره تن زونه نه؟ این چه حرفیه؟ خب زبان های الان باسبادتارن که باشن ما که دیگه از تو غار نیمدیم مرون نه یه حرفایی میزنی یاخ میگم مثلا اگه الان بیان با من مصابه کنن بگن تی بگن آقا دشتی به نظر شما مشکل اصلی ایرونیاتیه چیه میدونید چی میگم میگم ضبگیریه والا اول انقلاب همین مردم بودن عکس تی تو ماه میدیدن دیگه مع نبودن مگه الان هم ملشون تی؟ عکس جگه رو میبینن یه یه دیگه نه ببین نه ببین من خودم تو همین دیروز ذهر نمیخواستم رأی بدم به شما اینقدر این دختر ما تو گوش ما خوند، اینقدر هی رف اومد هی رف اومد گفت بابا پس آینده من چی میشه اصلا من دیگه رعی که ایت سیازر بودم یه پولی هم بدم این دست, دست از سر کسال ما برداره ول میگه گرم من که آخرش عبزیاخه کار خودم رو کردم من که به اینا رعی نمیدم که نوچرتم تو برگه رایم هم نوشتم همیره آیده مستی تمام <تصفيق> شدنم من دیگه به این اخون مخونده تی رای نمیدم عبزی زونه سی شده ترا قاطی میکنی آبزی رایم بوده دلم خواسته اونجوری بدم مال من بود م... م... مگه نه مگه من به شما میگم ترا به اینا رای دادی عبزی تاردیواری اختیاریه یا شما خودتون که بدتر از اینا این بابا دلم خواسته تی به رای رعی دادم عبزی آدمی جونم پیاده میشیم همینجا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 دریبی میاره اونا موقع فارسی قصد داره باشه. فرمودن ملت با شرکت انتخابات نظام جمهوری اسلام بیمه می‌کنه. آ خدا وکیلی یه پیکاری مدل هفته تصادفیه. رنگ رو رفتو پنچلو. بدون فرمونو بیمش می‌کنه؟ من که نمی‌دونم. <تصفيق> خیلی ممنون. این نظام واسه شما پیکان 57 تصادفی یا تاغون زده است. برای مقامات لابد چه آودی R8 2016 مناسب میشه دیگه. والا سفتا سدش هم برای نظام سه اونیم از لا بود ارزش داره که بیمش میکنن بله اما از انتظار تو دوران کودکی و دوران تحصیل گفتیم بعد از دوران تحصیل مهمترین انتظار توی زندگی آدم انتظار برای پیدا کردن شریک زندگیه روپیش خب نیاز اون معمولا برای آقایون انتظار برای پیدا کردن شغل مناسبه اون شغل مناسب هم معمولا پیش نیازش رفتن به خدمت و انتظار برای تمام شدن دوران خدمت سربازیه اینه که تو کلکسیون انتظارهای زندگی همیشه انتظار تموم شدن خدمت یکی از مهمترین و البته جانفرسا‌ترین انتظارهای جوآقایون تحمل میکنن و کسانی که به سربازی رفتن میدونن که به هر حال از روز ورود به خدمت تا روز گرفتن کارت پایان خدمت آدم تک تک روزا و ساعتاشو می‌شماره تا تموم بشه البته تو این مدت بعضی از خانوم ها هم انتظارهای کشنده و جانفرسای دیگه‌ای رو تحمل می‌کنن که همان انتظار از راه رسیدن شاهزادهی سوار به اسب سفیده قافل از اینکه حالا شاهزاده مربوطه در رفتن و پا و تو پادگانه علت بگم آ این مزال مال قدیم ترا بوده الان شاهزاده سوار بر اسب جای خودش رو به پسر حاجی سوار بر پرش و مازراتی داده که شکر خدا خدمت هم خب با حاجی همراهی کردن و خریدن و تو خیابونا مشکل دور دور هن و انو مشکل اینه که متاسفانه بعد از آشنایی هم معمولا قصد همه کاری دارن جز ازدواج پریواز غریب سلام. سلام سلام به همگی گی فرشی جان. انتخابات مهم فوتبالی هم داشتیم تو فیفا درست فرشی، دقیقا همزمان شده بود با انتخابات کشور خودمون مجمع فوق‌العاده انتخاباتی سیفا بود برای جانشینی سپلاتل. چی شد بالاخره حواشی چی بود؟ به دور دوم کشیده شد یه رقابت بود بین آقای جیانی اینفانتینو شونه به شونه با شیخ سلمان که بالاخره آقای اینفانتینو پیروز شد. دو هفته پیش یادش باشه ایشون یه سفر انتخاباتی اومده بود ایران و نظر آقای علیه کف نظر بله علی کفاشیان رئیس فدراسیون هم جلب کرده بود بله یادمه حالا آقای کفاشیان چیکار کرد دیروز رأی داد بهش کوچ سرایه خود آقای کفاشیان امروز گفته که رأی من مخفی بوده آه. اما روز قبل از رأیگیری در شهر زوریخ سوئیس صبحانه رو با آقای اینفانتینو خورده آقای کپاشیان نهار رو هم با شیخ سلمان. <تصفيق> <تصفيق> یه جورایی رد گم کرده. بنویسید خبر آنلاین دوباره زیر رو چشید. حالا بعد ببینیم خودش هم تو انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال زیر رو میکشه یا زیر روش میکنه. آره جالب تر این که امروز آقای شیخ سلمان بحرینی رئیس ایএফسی از بعضی از کشورها و بعضی فدراسیون های فوتبال که به قول قبلی خودشون برای حمایت از وی عمل نکرده بودند شدیدا گلایه کرده دیگه دیگه ظاهرا بعضی ها نهار ایشونو خوردن ولی حالا دیگه به هر حال <تصفح> جوری بگم دیگه حلیم اینفانتینو هم زدن ظاهرا بعدشون ایشون حواسش بیشتر جمع میگرد انشاءالله دوره بعد بله ممنونم ازت زد فری غریب تا فردا باید خدافزی میکنیم تا فردا خدا نگهده There's a fire around Heaven's down See the stars all around Heaven's falling. ما توی دوران سالمندی انتظارای های آدما ها گاه وقتا غمانگیز میشه. مثلا میبینی مادر یا پدر عزیزمون همیشه چشم انتظار بود چشمش به در مونده بهش میگی منتظر کی هستی میگه بچه هام یا نواهام که بیان یه سری بهم ام بزنن اما تو خب زندگی ها این دور زمونه هم خب درگیریشون خیلی زیاده آدما کللا خیلی وقت بیشتری رو باید صرف کار و زندگی و حواشیش بکنن اما خب دیگه بربرده کردن انتظارات بزرگتر هم، کاریه که خیلی وقت تو اولویت پایینتر قرار میگیره و گاهی وقتا اصلا فراموش میشه اما این هم هست که دیگه ی سالمندی که کاراشو کرده و بالاد یاردشو بیخته و علکشو آویخته چه انتظاری میتونه داشته باشه با بس دیگه آخه بندگان خدا هم منتظر بودن بسه الان باید در آرامش استراحت کنن حالشو ببرن دیگه چرا که نه والا همش انتظار انتظار انتظار انتظار, انتظار. وقتی روزامه شهوند امروز با اشاره به برگزاری انتخابات روز گذشته تیتر زده بود که حکم ملت البته حکم ملت هم که حساب نمیشه یه جورایی تنفیز حکم شورای نگهبان توسط ملت بود روزنامه جوان و بسته به سپاه پاستاران امروز در مورد شرکت گسترده مردم در انتخابات تیتر زده بود که پرشدن صندوقها دل دشمنان را خالی کرد دشمنان که به جای خود اینایی که اومدن انقدر به تمامی هر دو فهرست افراد هر دو فهرست تکرار میکنم تمامی افراد هر دو فهرست رای دادن که دل بعضی دوستان هم خالی کردند. که روزنامه یافتا به یز دمروز تیتر زده بود که احترام دولت امید به مردم در روز انتخابات نه اینترنت قطع شد نه تلگرام مسدود. واقعا شرمندم اون کردنست انتظار نداشتیم به خدا فقط امیدواریم این آزادی های لجامگو که بهمون دادن منجر به سو استفاده و توقعات بی جای بعدی نشه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 از بدرق تاراخ آخنها از شاق غمگین رسیدنها از دوستت دارم شنیدنها از هرچه با من هست میترسم میترسم شای منده روی میزه او از آرزوهای عزیزه او از اسم روی سینه ریزه او از ریتم موزیک مریزه او از ریتم موزیک مریزه او از, از هرچه چه من هست می ترسم می ترسم اشناسم به سقم او را انگیزه ی آن چشم و را آن خنده های ماجراجو را آن تخت خوابم ما، آن بو را گم کرده بودم آن خیابان را پرواز روی بام تهران را بغز چنار سید خندان را قرز قرار توی را آن موی بیرحم پریشان را اول من می من پیدا